ماها چه بخوایم چه نخواییم دو تا چیز رو لازم داریم یکی توانمندی و قدرت تو زندگی بخوایم پیش بریم واندین تو زندگی به قول خودمون یکی قدرت یکی عزت توانمندی و سربلندی اگر این توانمندی برقرار بشه سربلندی هم به دنبالش میاد معمولا کسی که عزتمنده مقدمه کارش توانمندی بوده توامنده حالا بعضی ها به پولشون به قدرت ظاهری که دارن جا و مقامی که دارن یه عزتی پیدا میکنن بعضی ها نه پولم نداره اما عزت داره حالا به قناعت به هرچی از مثلا یکی از کسایی که عزت داشته در این فقر و فقیری حضرت عبو بوده پدر امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره که ابی ساده فقیرا سید قریش بود ولی فقیرم بود ساده فقیرا سید بود همه قریش در واقع بهش احترام میذاشتن بزرگتر قوم بود قوم قریش خیلی طایفه بزرگی بودن قبیله بزرگی بودن ابو طالب رحمت الله علیه سید قریش بود ولی فقیرم بود انقدر فقرش زیاد بود که بچه هاش برادرهاش تقسیم کردن ده تا پسر داشت پسرها رو تقسیم کردن دیدن نمیکشه زندگیش نمیکشه امیرون رو پیانبر به به سرپرستی قبول کرد و امیرالمومنین مومنین پیش پیانبر بود عباس بعضی رو قبول کرد همینطور تقسیم کردن ولی در این حال آقای قریش بود یه پرد عزیز سرپراز بالایی بود ما اگر بخوایم تو زندگی شر و مشکل نداشته باشیم چه از خودمون چه از بیرون خودمون باید اهل عزتمندی بشیم خدای متعال میفرماید اگه ازت بخواید جایی نرید این ازتی لله جمیعا کل عزت پیش منه هر برید به پنبست میخورید به قول حاضی میگو بیخبست میگو هر موقع به بیخبس میخورید به امیر المومنین مثلا توجه کنید هزت کارو درست میکنه پس حالا که ما ناچاریم عزت داشته باشیم در رابطه با زندگیمون و بودمون تو این دنیا بتونیم موفق جلو بریم بتونیم شری از دیگران به اون نرسه از خودمون شر به خودمون نرسه بعد از خدا تغازه کنیم که خدایا این نعمتی که دست توه و فقط دست خودت هست این لله جمعیه در قرآن فرمودی از این ازتی به ما هم بده اگر این عزت رو داشته باشیم هیچ عزیز کاذبی که با پول و با قدرت و اینها خودشو عزیز کرده در چشم مردم که اگه این پولی گرفته بشه هیچی نیست قدرتی گرفته بشه هیچی نیست من یادم این به چشمم دیدم تو که اون طالقانی یکی از دوستان پدرش دفتردار وزیر بود و اینها پدرش دعوت کرد که حتما این کاری داشت. دیگه رفتیم اونجا هم که داشتیم می رفتیم آسانسور سوار شدیم اشتباهی رفتیم پایین رفتیم پارکینگ در درباز شد و دیدیم وزیر میخواد بیاد مثلا اومد تو آسانسور رو تنها بود نه کسی پیشش بود نه مثلا محافظی داشت سلام کردیم و اینها اومد طبقه همکف پیاده شد و ما رفتیم بالا. پیاده شد رفت. ما دیم پیش این پدر دوستمون. پیدیم پلانی اونجا بود. پسرش پرسید که پلانی اونجا بود. تک و تنها بود. گوه باز شده. از وزارت برداشته شده. وزیر جدید حالا تا انتخاب بشه یه سرپرست گذاشتن ماشین شبه داشته بود پایین ماشین. اداره و مزرسکونه و اینها تک و تحنون داشت میرم خواه میگم های غیر خدایی اینجوریه به قول آی قراراتی می گفت با یه تلفن دوزار, دوزار میارزه با یه تلفن برمیده لیش یا مثلا بالا میگه که از این به بعد نیستی فلانی از خدا پیس دوزار میگم میارزه یه تلفن. اگر ما بخواییم گرفتار اینجور عزیزان بلاوجه کی باشی ندارن ولی شرقشون میرسه چون قدرت دارن نشیم بعد خودمون عزیز بشین عزتم فقط دست خداست راهشم فقط تقواست اگر تقوا رو دنبال کنیم عزیز میشیم اگر تقوا رو دنبال کنیم قدرتمند میشیم میگه مگه میشه بله ابو طالب در عین حال که اسلام هنوز نیمده بود ولی فرض شخیصی بود نجسی سی نمیخورده آزار نمیرسوندن به دختران از از آزار نمیکردن رسم بود دختران رو بچه دار که می که دخترو ظلم نمی نمیکرد. سید قریش بود. در این حال که پول نداشت خرج کنه مثلا سور بده چیزی غذای بده که دور ورشتم باشن. اما چون آدم عفیفی بود آدم پاک و بود آدم عاقلی بود سید قرائش بود در این حال که فقیر بود راه رهایی از مشکلات این که حضرت می خدایا چشم اون دشمنی که میخواد به من ضرر بزنه چشمشو کر کن نمیدونم گوششو کر کن سرشو بکوب و به همینطور فرمایشاتش میرسه به اینجا که عزتشو میگه خدایا بگیر اون به با پشتوانه عزتش به من میخواد شر برسونه عزتشو بگیر اگر انسان بخواد از این شرور از شرور فرد و اجتماعی که بیرون هستن خودی و غیر خودی رهایی پیدا کنه باید خودش عزیز بشه و پلا فلا الحمدلله